الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين روایت یه که دیروز بیان نشد یعنی باشه درباره نماز به اصطلاح دست زدن به همون چیز بیست که غیر معقول الله و, و میت از اینی که خود سیغن در اون زمان شغل کسانی بوده که شمشیر رو تیز می‌کردن تیز کردن شمشیر با اینکه ظاهرا سیغن اعم بوده خرید و فروش شمشیر تیز کردن شمشیر ساختن شمشیر و بعدم شغولی که مربوط به غلافش می شده قلافش رو دستش می‌گرفت اینا ظاهرا در اون زمان که واضح هم هست مجموعه کارها رو افراد واحل انجام می دادن حالا در زمان ما کارها تقسیم بندی شده هر کسی یک قسمتی داره مثلا یکی کسی لازم فقط پیشموره میزیشه یکی کسی فقط فرض مثلا پوست میشه یکی فقط تلافی می ما به در اون زمان این بحثی به که ادعی از آقای مطرح کنه که اینشون سیقال بوده چه رافی داشته مسئله قلاغ شیخ هم توضیح کرده صحبت صفحه با در نظر گرفتن واقع خارجی بحثا جایی نداره خود سیغل مختصر قاعده تیز کردنه صقل این تیز کردن سقیل هم یعنی شمچیل تیز شده سیغل از کارهای سی انسان وقت ظاهرن مرادم فقط تیز کردن نبوده ساختن هم بوده خید و هم بوده ولی زد در لیست دادن ها تجارتون ولا معیشتون تجارت در لسان روایات و متاجر منه مطلق خید و الان گاهی تاجر به کسی اینکه کلی خیر و فروش میکنه. در روایات مساند وایا جزیرم تجارتی تعریف نمیکنه. غالبا تاجر رو برای مطلب خرید و فروشی یعنی به و شراء صلی اون جزئی باشه. علی اینکه فماکان و ولو عنوان ایشان عبل قاسم سیغله، با اینکه اینها مجموعه ای کارها بوده. پس این خلاف درست نعمل عمل صرف، اولا نمیخواد نغمل و سیوف باشه که در مکاسب ایشون باشه. عمل سیوف لفظ رو به قول معروف به نفع مله نقی نبات معنا کرد اشاره از اون عمل خارجی در این عمل خارجی شمشیر تیز می‌کردن شمشیر درست می‌کردن آهن رو می‌گرفتن مثلا تیز می‌کردن شمشیر می‌شد شمشیر می‌خریدن در می‌فروختن پس اون قلافه گویا در می‌فروشن می گویا درست می‌کردن دای قلافه رو جابجایی الی مجموعی مجموعه کارهایی که به این و از بر برمیگاش این رو صیقل می‌بوسه ابوالقاسم سیفان ظاهرا اینطور باشه. این راجع به کاریه. ای شد ظاهرا نقطته سوال چون من دی استم تو اون میته نمازمون اشتباه شده نکته سوال و نحن و نمازسه ها به ایدینا دینا و ثیابنا ب ماد با دستمون با لباس رو به این میته ها برخورد داره خب دست رو میشه ش سوالرش از لباسی که در لباس نماز بخونی میارن اما میفران اج از سووق در رسسلام بحث اینه که آقایون میگن از این که عبا فقط بحث صوع به رو گفته یعنی اصل خرید و فروش اشکال نداره اصل انتفاع اشکال نداره ما اونی که اونیکه بعید این معنا از روایت استفاده بشه چون امام وقتی میفرماجعل صوعند الصلاه معنیش اینه که این لباس نجسه مانعی از نمازش به از نجاسه معنایی که نداره اگر معناش این شد که این لباس نجسه معناش اینه که اون جلد میتره نجسه و لباس بن له واسطه اگر جلد میته ناجز شد بناش اینکه روایت دیباق المیتت به اصلاح جلد اهاب اهاب به دو فقط طهور اونم ثابت نیست این اینا بملازمه و الا اگر جلد میته برابر اینکه رأی مشهور اونها با ده باقی پاک میشد خب چرا بیا لباس نجس بکنه پس در حقیقت امان سلام الله علیه خوب دقت بکنیم با یک تعبیر که یک لباس برای نماز قرار بده یعنی ما ها میگن نجسه نکته دیدن مثل موی گربه نیست که پاک باشه و مانع نماز باشه چون لباس که محفوظه دیدن لباس تو جایز بوده این مانعیت الان مانعیت آرزه است، مانعیت آرزه غیر از نجاست معنا نمید پس این به نجاست به استراح مانع س نجاست در جلد میته به خاطه است که دباقی درش تأثیر نگرده بنابرای مشهور اهل سنت که دباقی رو موجه به تهارت میدونن باید امام بگم خب پا لباس نمازم پس دباقی درش تأثیر ندار اگر دباقی در اون تأثیر نداشته باشه معناش این است که پوست میته با گوشت میته یکیه شما از کمی اهل سنت فتباشون در میته این است که خیلی میدونن، پوستش رو به خاطر ایما احاب دوبه فقط تهور خارش کردن اون میکنیم الان هم بحث ما در خصوص پوست نیست اگر در پوست گفتیم دباقی پیدا قبول تاثیر نمی کنه تازه می شونیم گوشت فرم رو میکنه فقط در میته اونی که خود اهل سنت قبول دارن چون دواردی که انالالا حرم شیعن حرم سمنه این در خود میته هم آمده در خود میتاس هم روایت جاوید بن عبدالله انصاری که این ذیل رو نداره و هم روایت عبدالله بن عباس که الان هم باز اشاره نمی‌کنن اون در خصوص میتاس یا میتوک همین بود این در, ميته ميته. در ميته هم هست فلذا در ببینید در محیط اهل سنت به روایت نگاه نکنید بگید روایت فقط مانع از صلاتو گفته پس خلیلپورش اشکار نداره پس اساساً انتفاع اشکار نه روایت جو اینجوری معنا نکنید وقتی امام میگه مانعه یعنی چی؟ یعنی نجس شده لباید تو خودش ماره سواد نموده که نجاس ها از کجاست؟ چون ملاقات با میته کرده با پوست جلوده میته. خب جلوده میته چرا موجب نجاس هست شده؟ چون دباقی درش تحصیل نمیداره ولی اگه دباقی تحصیل داشت پاپوش رو پس امام میخواد بفهم اون روایتری که کردند. ایما احاوبن دو بغ فقط توار اینو ما قبول نداریم. در باقی هم بشه پاک نمیشه خب اگر در باغی شد پاک نشه پس چی میشه؟ حکم حکم دبیع از داره میشه؟ چون بقیه از که در باغی میشه گوشت متریک مج... میشه گوشت متریکی که در باغی نمی‌کنه. خصوص پوسته، مال جنده. دقت بکنیم ببین در حقیقت پوست خوب پوست به ملازمات دقت کردیم پوست حکم گوشت پیدا خب تر تقییترم که اونها جواز بیش نیستن پس در حقیقت امام با یک بیانی با اون میخواستن بفرمایند به این که آجان این بی هم درست نیست البته او فقط فهمیده مانعیت سلات رو حالا ممکن از امام طبیعه برمودن چون داره امی عبی اسیوف لسلطان. یه رو باید دیگه از اول قاتل رو یا ممکنه هست البته این امکان بسیار بعیده ما قاعده الزام رو ولو قاعده الزامی که دو مورد یعنی در اونی که الزمون هم به ما الزمو بیه انقصه هم داریم در مورد طلاق تطویر شده بگیم قاعده الزام به این معنی که الان ارزمون هم ما خود ما قاعده به قاعده الزام نیستیم بگیم بگیم که اون که که اهل به الله علیه مجمعی از انواع معاملات حالا تلاق نکا غیر نکا ها هست اگر پیش اهل سنت صحیح بوده چون به هر حال جامعه اسلامی بوده اشکال نداره چون جامعه اسلامی بوده اشکال نداره فرسونی این پوست میتر ایمان دباغي کردن و رو به نظر اهل بید این پاک نمیشه و میتر است و میتر هم داره فید هم جایز نیست لیکن چون جامعه اسلامی قبول داره چون اهل سنت قبول داره پوست میته و بعد از دباقی خود رو روش اینه که امام مسئله بیعه رو اجازه دادن و این قائده الزام به این معنای آم اینه که زنست است طلاقه نهیزا انسان بگیره شیئه بگیره این زنست است طلاقه با اینکه طلاق در مجد واحد باطله یا اصلا واقع نمیشه یکی واقع میشه معذاره که امام اجازه دادن گرفته بشه چرا نکته چراش اینه فرنسویم مثلا به این که شما الان و انگورتون رو بفروشیم به کسی که شراب درست میکنه میگن نه نه. اما خرماتونو بفروشیم به کسی که نویز درست میکنه با اینکه نویز هم به لحاظ حرمت مثل شرابه اما چون ادعی زیادی از جامعه اسلامی و به خصوص اهل کوفه معروف بودن به شرب نویز و نویز خرید و فروش میکردن این یکی رو امام اجازه داده. ایشون این بحث بعد در جای خودش، وقتی معناً انصافاً مشکله اثبات این معنا این قاعده الزام ما این قاعده الزام رو به معنای شک قبول کردیم، به معنای یقین خیلی مشکلی. دقت بکنیم <تصفح> یعنی اگر شما یک پوستی رو از مثلا سنی خریبین، فرض کنیم میته که دباغي کرده، فرض کنیم میته نباشه، اینجا بشه قبول بخود درست. یعنی این قاعده رو در ظرف شک میشه قبول کرد. اما در ظرف علم من یقین دارم پوست میته بوده و دباغي کرده. این حکم محیطه داده که فهم میکنم حالا تقییه بشه به خاطر سلطان اونم تقییه نه به خاطر امام امام میدونه که اگر به این شخص نفروش سلطان در این پاپوش درست میکنه چون ارز کردم الان هم تو زمان ما سلاح یک عمر استراتیجیکه یک عمر عادیلی سلاحیه یعنی اگر این نفروشه به سلطان سلطان پیگیر بشه که تو چرا نمیفروشی چون امامش گفته این میف و اینکه خرید و فروش نمیشه کرد خب این کسی که طرف معامله استلاله جزء روافظه به اصطلاح خودشون یا به قول امروزی جزء اپوزیسیون یا جزء معارضه هست. این جزء مخالفین نظام داره اسلحه رو از اون میخره خب این معلومه که سنن ششخه شد شاید اجازه خرید و فروش رو اصرار حال خود و طرف بوده از اون برم امام نمیخواد بفرون جایزه یکیش که ایجاد اشکال نمیکنه در فرامزه اتخذ سبند السلام ولزا در روایت قاسم سیقل نه ابل قاسم سیغل داره که وقتی به حضرت رزا نوشتم حضرتون اجال صحبند سلام بعد به امام جهاد می که پدر شما به من اینطور فرموده من دیدم این برای من مشکله خوب دقیقا سعابه داره که هلی این مشکل چی خوب مشکل مشکل اجتماعی حالا از پوست هایی که مزکاست درست می کنم قلاف رو امام جهاد به من بسیار کار خوب کلو اعم امکان وحشی یا انزکی یا پس بفهمیم از مجموع روایت اینطور امام می به یک بیانی بفرماین این میته است و خرید و فروشن درست نیست لیکن اگر این رو تصریح می کردن مشکل درست میشد. یک فقیه شیعه ممکن این معنا رو بفهمه اما این نامه امام دست سبته سیاسی بیافته این مطلب نمی نماز من گفتم نما... لباس بر نماز من که نگفتم خیلی وجود من نگفتم میت هستی من گفتم لباس بر نماز عوض تو چطور شما در این که اخلع نعلق از جلد حمار میسی خب این هم حالا فسون در اون امت موسی بود در امت اسلام ملاقی با میته ملاقی با به اسرائیل این هم اشکال داره حالا اون در جلد حمار میسودی از اون جلد نیست این ملاقی این به خاطر عظمت صلات این تفسیر خیلی گفته شده پس من فکر میکنم این روایت مبارکه این طور که آقایان ما معتقد هستند دلالت بر جواز می‌کنه یا گفتن آقا مثلا پوستا رو نمی‌خوخته اون قلاف شمشیر نمی‌خوخته یا زمینه بود از این حرفی ظاهرا همش خلاف ظاهره اون چیزی که ما الان از این روایت میفهمیم امام با یک نوع بیان تقیه ای به این معنا که اون محل سوال رو جواب ندادن یک سه تا سوال کرده یک چیز جواب دادن فقیه شیعی با ملازمات میفهمه میفهمه که اون نجس بوده چون نجس بوده دباغی تأثیر, نکرد. تأثیر نکرده اگه دباغی تأثیر نکرده پوست میته با گوشت میته یکی میشه چه خواهر میکنه؟ کرده یعنی؟ اونی که اهل سنت دارن که در میته جایزه خصوص پوست گوش قابل نیست اونم به خاطر این روایت ایما دباغه ایما احاب دو و و ایده از اهل سنت هر کس از احمد نهمد یه روایت دیگه‌ست گذارش شده که لا یلتفاو تنال به اهاب ولا عصب اون رو قبول یعنی گفتن این روایت ای اهاب قبول داریم از رسول الله از سنجه معتبره لكن اون آخر حیات رسول الله بوده یکی دو ماه قبل از شهادت رسول الله بوده و نظام ما بو اخذ میکنه این تفاصیلش بوده الان این مقدار الان من یه توضیحی داده شده دیروز چند روز گذشته راجع به شرح حدیث ممکنه یک ابهامایی وجود داشت حالا این ابهامو برداشته بشه خب ما برگردیم به اول بحث. ارکدیم بحث در این است که لا یا جوز و دای ال میته. این بحث اینه. چون به نجاسات ذاتیات و قول از ارکدیم این مسئله به این عنوان هماناً اصل قرآنیشه ان ما حرم علیکم میته. اینجا اصل قرآنیه. من چه اشکال این است که این حرمه یعنی چی؟ یعنی خب خو... خ... یعنی خ... خوردنش مثلا یا خرید و فروشش یا و یا و یا و پرس کردیم امکان داره مراد همه تحریم باشه معروف بین اون اثر ظاهر که اخیر لیکن خب احتمال اراده همه همه همه هست هر رن بینیم محروم و این معنا را هم فوقاهای ما خیلی سخت التزام نهیدیم التزام بدن اما در رواید توحفل اقول هست و انصافا رواید توحفل اقول رو اصحاب مثل منحوهای خودی دیگر دیگران متاخرین غیر متاخرین اشکال کردن اشکال کردن که اعراض ازش شده راست فتوا بلیم نیست چون تقیق داره تا افل اصلا خون جمعی اقسام کارها در خون حرامه خوردنش حرامه نگهداریش هم حرامه امساکو هم حرامه اصلا خونش شیشه خون دو اتاش بگره همون هم حرامه میتره خوردنش حرامه خریدش حرامه فروشش حرامه هدهش حرامه نگهداریش هم حرامه بسیدون که باشه که دو نمایش بسادی مورد نمایش جیفر کار شد الان صاف رو بنک هر آن در رواش صاف روگون کم حرام. این صاف در دنیای ما هم این حرفی در صاف رو خوردن حرف معمولیه. از با صاف روگون یک آثار اقلامی فیش داره می‌زنن که مواد دلی. اینه الان یک چیزی که پلیدی باشه سعی می‌کنیم به طور کل از صحنه زندگیشون جذب بکنه. کسی باشه پلیدی باشه آشغال باشه زباله باشه. پس آاشغال بیمارستانی باشه این سوزن اون رو... این چیزی که هستحمل سری میکن یا بسوزونن سو یا درکن یا... انصافش یعنی انصاف <تصفيق> این چیزی که در رووارد توط قل آمده با مطالب به اخلی زمان ما هم می سازه انسان خونی که منشه جمعوری میکره خود چرا تو اتاقششون گه بذاه. یا میتو میث میگه خود تو باخچه باش. خب فمان برای که حرام نیست نگهذاشته اما چون رووارد تو عمل قلامده میکن نه انصاب حرام این روایت رو حفل اول با این معنا با ظاهر حرمه میسازه حسابه شما محرومید حرم علیکم خداوند شما رو از میته و خون و نمیدن ولان. این حرمه محروم کرد لیکن ارز کردم فتوا فعلا بر این نیست این یک مشکل کار این راجعه به آیه مبارد راجعه به روایات هم ارز کردید مشهور بین فقا احل سنت خیلی فروش نجاسات ذاکی جایز نیست و ادنهشون هم این حدیث انالله دا حرم شه این حرم سمنه میترم که حرام کرده خودو توی این روایت این روایت دو مطم داره یه مطمی که قاعده رداره یه که این قاعده رداره توی همین روایت سؤال از میترم هست که خید و فروش ما پیغم نه ولی ازا خود اهلسان در خید و فروش رو جایز دیم داره این واجبه میترم راچه به خصوص پوست میتر یکی از اجزاء لاته‌الحال حیات سمو و شاخ و سم و دندون و استخوان و این جور چیزا اونها بحث دیگری راجع به اجزاء لاته‌الحال حیات روایت خاصی نداره در عمومش اما راجع به،, به صلاح این قسمت پوست داره ای مایه‌ها به دبغ فقط تهم و لذا اونها خصوص پوست رو که دباغي شده خارج می‌ذارن میته هست خارجی بده. بچون شو. ادعیه انسان از اهل سنت که نادرن، زیاد بیستن. پوست رو هم قبول نمی‌کنن. میگن دباغی هم تأثیر تاثیر نداره و توضیحاتشون رو سابقا گفتم من دیگه تکرار نمی‌کنم. روایتی رو ادعیه نخر کنن که پیغمبر یکی دو ماه قبل از وفاتش اون عبدالله رو اوکی میکنه. نامه ای نوشتن برام، لا یونتف و امین به بهاب و لا پس این مجموعه روایات اهل سنت معلوم شد مشکل اهل سنت روی احاده پوست میگه روشن شد پوستی که لواقی بشه این مشکل اهل سنت البته پوست رو هم ادعی تعمیم دادن حتی به حیواناتی مثل درنده ها و سمور و که تو دریا هستن جس خز و مز این چیزایی که خیلی هست ادعی هم گفتن نه خصوص اصلا گفتن من اقوالشون از کتاب خطبه احسانت خودی، اصلا احسان درباره پوستم هفت تا رأی دارم من هيث المجموع. آراشونم گفته گفتیش. این سر روایات ما. حالا اون اومده اینه. روایات ما به طور کلی به دو طایفه تقسیم میشه. فعلا ما یه بعدم طایفه رو می بعدا طایفه دوم یه طایفه رو که کلماتی که خود ائمه علیهم السلام رسیده در باره میتو و اخصاب یک تایفه روایت اشاره است به همون بحث معروفی که اهل سنت داشتن اون بحث معروف اهل سنت این بود یکی اون روایت دوستند مال میمونه یا نو کلفت میمونه یعنی برده کنیزک میمونه که حیوان مرده بود میته بود تیغمبر فرموز حالا انتفاعتم به احابه حالا مرده او س چرا کرد این گفتن مییت است انها شتون میته حال الا انتفاعتون به اهابه ها ان الله حرم اقل ها حرم لحبه اینم که همدار تو بعضیش. او قصسته اصل کردم پیش اهل س نه به متون مختلف آمده و سانید متعده این اختلافم کردم تورسیم تو بعضیاش داره تو بعضیش داره حا دق کاش که د باقی میکردید انتقام کرد تو بعضی داره که نهلا ترکتو بوم چرا بدش کردید ذره میکردین از پوستش استفاده گوش که نداره خیلی لاغر بود گوش که نداره علا از پوستش استفاده میکرده یکی این بحث این معروف شده به شاته میمونه یا عمال میمونه عمال ام... مؤمنین هست یا عمال کسی هست آه. تو روایت ما سوال که نهزد حضرت... حضرت... که این رواقه شات میمونه چیه امام جواب دادن چون عرض کردن این روایت شاطی میمونه متونش مختلفه خود اهل سنت اختلاف کردن تو مثل یعضشون قائلن که مراد پیغمبر این موزه که میشادش استفاده کرد نه با دباغي بدون دباغي هم میشه استفاده کرد مثل زهری نقل کردن اون روز زهری عقیدش بر این بود که از پوست میته میشه استفاده کرد بدون دباقی هستن دلیلش اونه همون روز بعدشون گفتن با دباغي چون تو دباغی داره حلا دباغشون اون گذشتی یه <سؤال> طایفه روایات ما اینه که این قصه شات میمونه چیه یک طایفه روایت ما راجب به همون المیتتو لا یونتفا من المیتتو به احابن ولا اثر که اهل سنت نرفه این تو ما تأکیب شده که این درسته خب پس یک طایفه از روایات ما ناظر است در روایتی که از رسول الله رسیده توجیح کرده اون روایتی که از رسول الله رسید اون رو بعد داره یه طایفه از خود امام سوال شده امام جواب داده حالا ما این روایت متعرض میشیم ببینیم از مجموعه روایت چی درده این روایت ما هم باز مزامین متعدد داره یعنی یک نواخ نیستن یکی از مزامینی که در روایات ما وارد شده از کردم اینم در ذهن مواردتون باشه ما راجع به میته مجموعه روایت اگه کسی آن حال داشته باشه ذوق داشته باشه خوب بد نیست همه روایت میته یک جمع بکنیم یه جوزه بشه در وجه میته و احکام متعددی که داره افتادان آیات مبارکه بردم ما در میته چند تا حکم داریم یکی انتفاعه یکی خرد و فروشه این دوتا رو ما الان تو بحث مکاسب میگیم او دقت بکنیم یکی نجاسته این در جلد دوم یا سوم وسائل روایتش در باب نجاسات همونده یکی مانعیت نماسی دقیق می یکی قرمت عکل و قردن اونه اینا رو مرحوم سال, سال تو عطم و عشبه و زباهه آورده سه دو زباهه یعنی؟ لذا روایات میته روایتی دارش میته هست احکام متعدد داره یک نواخ نیست یک حکم نیست و خیلی لطیف اگه انسان فرصوی یک جل جمع بکنه کل روایتی که احکام میتره متعدد داره انتفاقه ره انتفاقه خرید و فروش ولاته این یک یکی دیگه اینکه یک طاعتی از روایات ما اون چیزی رو که ملحقه به میتره متعرض شده و اون اجزاء مبانه از حیل مثلا یه گوستن دستش بریدیم مثلا این با مثال بعد هم یوش دادین به اصلاح تو اغل میگذ حالا آیا اون حوشت رو میشه خورد؟ مثلا این ماهی گوستن رو زنده زنده جدا کردی؟ او به قبل هم خواستم این بسم الله شم بعد آیا این رو میشه پس یک برس واجه به کل حیوانه یک برس واجه به اجزاء حیوانه اینم مطرح شده اینم تو رواده میده مطرح شده الان این بحثی که من الان می کنم که دستی متعارف دستی گوستنده ببارن اونی که متعارف بوده مثلا در مناطقی که کوهستانی سه علف های خوب داره و خیلی سردرینه های خوبی هستن دنبه های اینا بزرگ بزرگی می شده به حیثی که رو زمین کشیده می شده وقت می نصف دنبه رو و بعد باروغم داغ می کردن که بعد بمونه این بحث شده که آیا اولا این میته نه؟ اصلا اساس برای جاری میشه اساس تو اگه شکل کنیم جایزه میشه خورده انا اصلا تصمیه بکنیم رو و بوسنده بخوره و قبله و دنبه در حال رو بقبله و بسم الله و فتحان و, و به آرت منحدید و به زابه مسلم و آیا این جواز انتفاع داره پس ما در روایات متعدد داریم این روایات این مطلب خود به خود مطرح شده و در روایات ما یک مقداره که توش تا آرز داره تو همین مطلب حالا این البته ملحقه بمیترست اولین باری هم که در روایات ما در حقیقت مطرح شده از زمان امیر مؤمنینه اما طرح به سالی که به ما رسیده از امام صادق و موسیقی جدر حضرت رزاست حالا یک مقداری راجع به این مطلب بست این مطلب رو مرحوم سهاز و وسائل کل این رو در باب سیوم از ابواب سید و زباهه اوورده به حسب این چاپ که پیش من هست چاپ مرحوم های قدس الله نفسه بله در جلد شونزه هم میشه از این کتاب صفحه دویست و مرد و و, مرد و از این مطلب ما الان پس ما الان در حقیقت بعد از روایت ابل قاسم سیغل وارد بحث محل بحث رو ارز بکنم روایاتی که دلاته بر عدم انتفاع بمیته یا انتفاع بمیته داره و روایاتی که در واقع خرد و فروش است حدیث اول رو مرحوم کلینی قدسال با نفسه نقل کردن عدت من اصحاب من صحل ابن زیاد خب در صحل یه بحث تونانیست نمیخواد در این جدیه متعددس میشون من احمد ابن محمد ابن عبی نصر از مرحوم بزنتی ایشان از اون عرب کرد عرض کردم من خدمتون این اشکال از وقتی که در حادیث ما تقییم قول عربایی و بفاسی ما ارزیابی سنت شروع شد قالبا این اسانید رو ضعیف می رسد. عرض کردیم این معنایی از تغییر روا صحیحا زعیفا حسنا موسقا اولین بار در فقه ما و حدیث ما برمانه علامه است در قرن هفتون و هشتون و اول قرن هشتون و فایکی این کتاب ها کنید مثلا کتاب کافی اوایل قرن 4 کتاب فقیه اواخر قرن چهارم، کتاب تجویر استفسار اوایل قرن 5 لاکن تا دو قرن اصحاب این بحث ها رو مطرح نکرد اولی کسی که این بحث رو مطرح کرد مرحوم علامه است من ندیدم نه اینکه از مرحوم هم, در هم که مرحوم من ملا محمد امین استرابادی در فوائد مدنی نوشته که تشی دروز ضربه خورده که که می‌ذارن که علامه در موردش که صحیح انموزه بودم الان این که تو خان مرحوم علام قدس الله نفسه این اصطلاح رو به کار برد از وقتی که این اصطلاح به کار برده شد اواخر قرن هفتون و اوال قرن هشتم، حدیث توصیف شد به زر میگو روال کلینی زعیفن ان الکاهلی به زعیف باقید تقصد هم به خاطر سهل بزیاد و از علاوه ذالک تا حدود قرن دهم. حرکت اخباری ها که شروع شد یکی از کارهای اخباریم بود که این احادیث تصدیق کنند یکی از کارهایش شد حالا راهایی که داره و مرحوم مجلسی هم داره دیگرانش اون یکی از راوش بود که مرحوم سهل بن زیاد در اینجا واسطه است ایشون راوی اصلی نیست ایشون واسطه است واسطه از طریق راوی از کتاب بزنقی به هست. این نظر درسته یعنی نکته بحث اینه که این روایت رو مرحوم کلین در حقیقت از کتاب بزنقی گرفته که هم بزن رحمه الله کتاب جامع داشته کتاب نوادر داشته جود بزرگان اصحاب و کتاب ایشان نسخه داشته یکی از نسخه کتاب ایشان کتابی نسخه ای است که سهر نقل کرده روز مرحوم کلینی قطعا روی نسخه اعتماد کرده اما حالا اعتماد مسرق بوده یا فعلا در اختیارش همین نسخه سهر بوده میدونسته چون قبلش بوده کلینی میدونه که همون روز بخونه که در بقیه نسخه نواده یا جامع بزنکی هم هست شاید فالعلم بله، عند الله الان كيف ما كان راجب سهل به خاطر اینکه طریق است به کتاب بزنتی این یک و کتاب بزنتی بسیار معروف خود هم بسیار مشهور دو سه اینکه ناقله این کار هم کلینی است که او سب الناس حدیث چیزی که این کار کرده کلینی این کار کرده یک به قول معروف یعنی علی به قول انسان عادی این کار نکرده خب اگر این مجموعه شواهد سلاسل جمع بکنیم میشه قبول کرد خیلی مشکل نداره فقط مشکل چیه ما همیشه عرض کردیم درست سهل بن زیاد واسطه است و طریقه با اگر دقیق نباشه ممکنه کتاب جابجا جا شده باشه ممکنه در هاشیه بوده در متن داخل شده مثلا مثلا که در مشکلی که شخص دقیق نباشه این است که درست متن رو نقل نمیکنه ان ال کاهلی کاهلی توصیف نداره اما انصافا مرد بزرگ و امام به اون مرحوم یعقین ابن یعقین میگن که اقمنلی ال کاهلی از ملکه که خوب شخصیتی بوده در معرض خطر در مقابل سلطه سیاسی بوده که اگر کاهلی کشته شد شهید شد شما متضمن اولادش باش خانوادش شما اداره مالی بکن و من در مقابل بهش رو برای چه تنظیم بکنم این کلام از امام معصوم حالا شاید بحث رجالی نبوده بحث توثیق و رجاست اما نشون میده که مرد بزرگواری سیه خیلی باید بالا باشه تا امام معصوم راجع به ایشان همیشه تعبیر آیان میان همش از این تعبیرات و ملازماتش به نهل رجال میخوان استفاده کنن لازم بوده همش رجالی باشه در از اینکه شخصیتی باید باشه که امام سلام الله در فکر آینده خاندان او هست به این مقدار که اگر تو به عهده اداره مالی و خاندان کاهلی رو بررسی زار شهید نصف دست اونها رو میونه به عهده بگیری من در مقابل بهش برات تضمین میکنم خب نه دیگه بحث عادی باشه حالا ببین تو رسافتش بحث میخودت خب زار میگه مسافت مسافت مفرقانه ان باشه این باید سوال جلالت و مقامات بالا راجع به او صحبت بشه کسی که زندگی او مقابل با بحثه خب این فرد عادی نیست این بحث ها رو شون در رجا روردن که از این عبارت توصیق در میاد یا نه از نظر ما خیلی همین خیلی دائر ریزه به قدیه فکر کردنه انسان وقتی تأمل خارجی چه بکنه که امام رو حالا خب ما بچه می‌گی شما این کارو کن شما رو بهش خب برای خودم نه حرفی میزنم اما امام معصوم میفرما که زندگی این در مقابل بهشت خب شوخی نیست خیلی باید مخصص نفس خود سیه باشه قال سهل رجل ابو عبدالله و ان دف ات الیاش به فقال لا بس بقنه. ظاهرا این سؤال نابعثه و قسعه ها چون معارض داره ظاهرا سؤال از خود فعله نصلا این جایزه یا نه جایز نیست این کار حرامه ادا کنت تسله ها ماله هر سی ادم این دنباه ها خیلی بزرگ میشد در مناطقی که مرتقه های خوب داره این اینقدر میشد که اصلا حیوان دیگه میشد راه داره بو زمین تشیده میشد میامادن بایه ترتیب خاصی با داخ به نظر من این روات ناظر به اصل جواز فعله. نه اینکه اماما مخواذگ لاورکن بعدشان برو بخورون دنبال رو فکر نمیکنم ناظر به با او باشه. لسان لا بهث به قطعه ها. قطع نمی به ها ببین داره اداره نمیم لابعثه به اخلا از این ضیلش هم ااضکن و توس ااضکن و توص ها به هم مالک بازه هدففیده که مال تو به این ترتیب رو اصلاح بکنه اونطورشگاه این سان درخت به میکنه که میکنه می‌کنه اینا دوستان. تو مقال این نفی کتاب علی علیه السلام این ما قطعه ها میتون این نکشه لا ینتفعو به این روایجو رو دیسکرام میشه میته قابل انتفاع نیست ان ما قطعه من ها علیات به اسلام اونجا های گوسن میتون لا ینتفعو به مضمون شیخ کلینی اولین بار این حدیث آورده 180 حدیث اورده شیخ طوسی این حدیث آورده او انصافا شواهد در قبولش خوبه مشکل نداره یه بحثی هم هست ما در عده از زواد پی کتاب علیه اینو من دیگه چون بحثای بوده خیلی مفصل صحبت این حالا بخوام اونها رو چند روز باید بگیم چون بنظرم بحثش همین 10 تا 12 ساعت شده عرض کریم اجمالش اونی که به اونها کتاب علی در روایاس ما آمده. یک کتابی بوده ما در از تربیه اهل در اختیار بیت بوده عمومی نبوده یک کتاب علی در کلمات اهل سنت و زیبیه ها آمده او معلوم نیست اصلا مال امیر باشه یعنی در بعد از شهادت امیر در خود کوفه در درجه اول یه نوشتاری بوده به نام کتاب علی در اسانید گاهی به علی ابن عبی طالب نسبت دویشده گاهی به وقتی ابو رافع داده شده، گویا به عبید الله پسر ابی رافع بن شده، به حارث همدامی همدانی داده شده. به اعده این کتاب نسبت داده شده. دیگه چون یک شرح بسیار مفصل میخواد تمام اون‌ها یکی یکی تراقاشه بررسی کردیم، در تنقید کردیم. حالا اون‌ها گفتن چاپ می‌شه، چاپ شد در 10 تا بیشتر اون بحثا رو خیلی طول میشه، ظاهرن اون چیزی که در روایات ما به عنوان کتاب علی آمده اون کتابی در اختیار مردم نبوده و اون کتاب علی که در اختیار مردم بوده در اختیار زیدیها ها هم بوده خصوصا عیمه زیدیه بعد از زید چون بعد از زید و بعد از شادقیه یه یا پسری ایشان تقریبا امامت در زیدیه رفت به سادات حسنی در مدینه اون محمد نفس زکیو، و پدرش عبدالله همه اینا انقلابی به اصطلاح امروز قائم سیف بودن حرکت بسیار انقلابی داشتن و امام ساده که مثلا حرکت نداشت او در مقابل بود اینه ها شدن زیدی اصطلاح و همین عبدالله محض وقتی میگفت کتاب علی همون کتاب مرادش اون کتاب مشهور کمال ابو رافع بوده و این یکی از نقاط اختلاف که بقیقه نخواه مطلب لفظش آسانه و معناش سنگینه یکی از مباده اختلاف فرهنگی بین اهل بیت از یک طرف و زیدی ها یعنی 사ادات حسنی از یک طرف اونا در معرفت ارا امیرالمومنین و قال امیرالمومنین به اون کتاب برمیگشتن اون کتابی که در کوفه بود و ها از اون نرفتن الان شما هم در کتاب اهل سنت نسبتاً تفاوای فراوانی نسبتاً فراوان دارین که از علی نبی تا روایت تو اتمام یا ذبد آمده. اون چیزی که اونها از علی نرفتن بیشتر از اون کتابه اونچیه که در روایات اهل بیت از این کتاب سی خاص پیش اینا هست. و این دو کتاب با هم توارق زیادی دارن، یکی از توارقش هم تعبیراتش با هم مختلفه. این یکی از توارقه. چون این بحث من خیلی مفصل مدلسازی کلامال ندارم. مثلا اونچیه که اهل بیت به عنوان کتاب علی نکرده، متنش مونجت و کشوردو و همچین حساب شده. اونی که اونان اجرا کرده متنش خیلی سبک از نظر انشاء سبک سبک‌تره. خیلی متن بازاریه یعنی مطن با... خیلی ادبی نیست مطنی که اونها نقل کردن حالا این یکی و الان برای شما نقل میکنم انشالله تردا یکی که دیگر از کتاب علی نقل از اون مطنه برای مقانه بین دو تا متن خوبه ببینید ما قطع امنها میتون دایون تفعه به خیلی موجز و مورفی رو تشهنگ به نظر من از همون کتاب علی که اونا او وقت این مرد رواست دیگه هم داره این ظاهرن یکی از سوالاتی بوده که این مطرح شده حدیث شماره دو هم